گوینده فرید حامد ارز سلام و و احترام خدمت دوستان عزیز و گرامی و همراهان قصه های شاهنامه فردوسی با ادامه داستان سیاوش در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید. در برنامه قبل زاده شدن سیاوش، بزرگ شدن و تربیت اون توسط رستم رو با هم مرور کردیم و ماجرای گذر از آتش و اثبات بیگناهی سیاوش و خونسا شدن توتعه های سوداوه هیل یرمکار رو با هم شنیدیم امشب به ادامه این ماجرا می پردازیم مدتی از ماجرای گذر از آتش گذشته بود و همونطور که گفتیم با وساطت سیاوش خوشقلب و پاک نژاد کاووس از گناه سودا به گذشت و دوباره اون زن هیلگر موفق شد خودش رو توی دل کاووس جا کنه. از اون طرف از سالها قبل پیمانی مرزی بین ایران و توران برقرار شده بود و قرار بود که هیچ کدوم به کشور دیگه تحرزی نکنن تا اینکه افراسیاب پادشاه توران پیمان شکنی میکنه و با لشکری به نواهی مرزی ایران حمله میکنه. این جناب افراسی ها پسر پشنگ و نوه توره. تور هم که یادمون هست یکی از سه پسر فریدون بود که برادرش ایرج رو با همراهی برادر دیگرش سلم به قتل میرسونه. از همون زمان همیشه بین ایران و توران جنگ بوده. این بار هم افراسیاب آغازگره جنگ میشه و کاووس سران و موبدان رو جمع میکنه تا برای مقابله و افراسیاب چاره اندیشی کنند. نتیجه این میشه که تصمیم میگیرن یکی از پهلوانان و سرداران ایران به همراه سپاهی بزرگ به جنگ افراسیاب بره و اونها رو از سرزمین ایران بیرون کنه. در اون جمعی که این رایزنی زنی و مشورت انجام میشه سیاوش دلیر هم حضور داشت و پیش قدم میشه و میگه من حاضرم به این جنگ برم و افراسیاب رو یک گوشمالی درست درست حسابی بدم قاووس و سایر سران ایران هم که میبینند بهتر و شایسته تر از سیاوش کسی در اون جمع نیست با این مسئله موافقت میکنند قاووس به سیاوش فرمان میده تا سپاه رو برای جنگ آماده کنه از طرف دیگه نامعی به رستم مینویسه و از اون هم درخواست کمک میکنه رستم به پای تخت میاد و کاووس به گرمی از اون استقبال میکنه و بهش میگه قرار سیاوش به جنگ افراسیاب بره و من از تو میخوام در این جنگ پشتیبان با راهنمای اون باشی رستم هم در پاسخ میگه سیاوش مثل پسر منه و من هر کاری بتونم برای کمک به اون انجام میدم. خیالت راحت بشه که من پشت و پناه و همراه و مشاور سیاوش خواهم هم بود در این نبرد. ظرف چند روز سپاهی بزرگ آماده نبرد میشه. فرماندهی سپاه رو به سیاوش میسپرند و اون با همراهی رستم، فرهاد و زنگه شاوران، راهی مرز توران میشه سیاوش با خودش فکر میکنه این فرصت خوبیه که هم مدتی از مکر و نیرنگ سودابه دور باشه و هم با پیروزی در این نبرد شجاعت و ارزشهای خودش رو به رخ پدرش بکشه و به اون نشون بده با این انگیزه ها سیاوش به همراه سپاه با بوق و کوس به راه میافته و به رسم اون زمان که کاووس چند منزل سپاه رو همراهی میکنه و بعد در آخرین منزل از فرزندش خدا حافظی میکنه اونو در آغوش میکشه و برای آرزوی موفقیت و پیروزی میکنه سیاوش از راه زابلستان راهی مرز توران میشه و وقتی به زابلستان میرسن چند روزی رو استراحت میکنند و در این مدت گروهی از سواران کابل و زابل هم به سپاه اضافه میشن و سیاوش اونها رو به زنگی شاوران میسپره تا زیر فرمان او وارد نبرد بشن سپاه ایران نزدیکی مرو رود و شهر بلخ که اون موقع در تصرف تورانی ها بود میرسه و از برادر نابکار افراسیاب و بارمان یکی از فرماندهان سپاه توران در بلخ بودن و نزدیک شدن سپاه ایران رو میبینند و با دیدن عظمت سپاه ایران سراسیم پیکی رو به سمت افراسیاب میفرستن و به اون خبر میدن که سپاهی از ایران به فرماندهی سیاوش و به همراهی رستم داره به قصد حمله و جنگ به سمت ما میاند در نزدیکی های دروازه بلخ گرسیوز به سپاه ایران حمله میکنه دو سپاه سه روز با هم در گیر جنگی سخت میشن و سرانجام در چهارومین روز سیاوش بلخ رو تصرف میکنه و گرسی و سپاه توران عقب نشینی میکنند و متواری میشن. سیاوش قاسدی به پایتخت میفرسته و گزارش پیشرفت جنگ رو به کاووس میده و از اون اجازه میخواد تا برای سرکوبی و گوش مالی تورانیان از مرز عبور کنه و کار سپاه توران رو یکسره کنه ولی کاووس دستور میده که در بلخ بمون و منتظر باش چرا که تورانیان دوباره حمله خواهند کرد گرسی و از بعد از شکست در جنگ با سپاهیانش از بلخ فرار میکنه و به سمت پای تخت توران حرکت میکنه خبر شکست تورانیان رو به اطلاع افراسیاب میرسونه افراسیاب از شنیدن این خبر اینقدر خشمگین میشه که دلش میخواد با شمشیر گرسی وزبی ارزه رو به دونی میکنه پیروزی ایرانیا در این جنگ افراسیاب رو بسیار افسرده و نگران میکنه ناراحتی اون به اندازه بوده که حتی شبها هم خواب آسوده به چشمش نمیان شبیه از شبها در خواب کابوسی هولناک میبینه و از ترسون چنان فریاد میکشه که از شنیدن نهره اون همه از خواب میپرند و با عجله خودشون رو به خوابگاه افراسیاب میرسونن برادرش گرسی و از هم سریع لباسش رو میپوشه و به بالین افراسیاب میاد بالای سر افراسیاب میشینه شمی می روشن میکنه و درباریان هم به همراه اون دورش شلقه میزنند. بعد از چند لحظه گرسی به همه میگه که از خوابگاه شاه بیرون برید و منو با برادرم تنها بگذارید در کنار بستر افراسیاب میشینه اونو در آغوش میگیره و با مهربانی میگه برادرم بگو که در خواب چی دیدی چه چیزی تو رو اینقدر شیفت زده و آشفته کرده افراسیاب میگه خواب شگفتی دیدم که هرگز هیچ کسی تا عالم چین خواب ترسناکی ندیده گرسی میگه برادرم من و تو در بیداری هم شگفتی های بسیاری دیدیم ما نباید از دیدن یک خواب انقدر به حراس بیاییم حالا بگو ببینم اون خواب چی بود میگه در خواب بیابونی دیدم پر از مار و اقاب که دو آسمون پرواز میکردن در اون بیابون خشک و سوزان من سراپردهی برپا کرده بودم ناگهان طوفانی سیاه برمیخیزه و همه جا رو تاریک میکنه هزاران سوار ایرانی به لشکریان من میتازند و سر بسیاری از سپاهیان من از تن جدا میکنند دریایی از خونجاری میشه سرانجام من از تخت زرینم به زیر میکشند و دستامو و میبندن. هیچ کس هم به یاری من نمیاد پهلوانی گستاخ از سپاهیان ایران منو با دستهای بسته به نزد کاووس میبره و انگامی که کاووس منو میبینه شمشیر میکشه تا منو با شمشیرش به قتل برسونه من از ترس فریاد میکشم و از خواب بیدار میشم گرسیوز برادرش رو دلداری میده و برای اینکه استراب و نیگرانی اونو کم کنه میگه تعبیر خوابش اینه که اون همچنان پادشاهی قدرتمند خواهد بود و دشمنانش رو سرنگون خواهد کرد. شاه که از این تعبیر آبکی و نیمبند قانه و رازی نشده بود دستور میده خوابگذاران خواب اون تعبیر کنند. اون شب تا صبح خواب به چشم افراسیاب نمیاد. صبح که شد خوابگذاران خواب پریشان افراسیاب رو اینجوری تعبیر میکنند. میگن اگر افراسیاب به جنگ سیاوش بره تورکان شکست میخورند و همه کشته میشن در این پیکار سیاوش بر افراسیاب پیروز میشه و توران رو ویران میکنه افسردگی و اضطراب و نگرانی افراسیاب با شنیدن این تعبیر وحشتناک بیشتر میشه وقتی که همه رو مرخص میکنه به یرسی از با درد دل میگه بهتره با سیاوش آشتی کنیم تا اون به دست من کشته نشه و کاووس هم بحانه ای نداشته باشه که به این سوی رود جیهون که مرز بین دو کشور حمله کنه. آشتی بهتر از جنگ و کشتاره. باید هدایای گرانبه ها سیم و زر و مروارید فراون به سیاوش پیشکش کنیم و اونو به آشتی بخونیم. حالا برو و به بزرگان و اندیشمندان کشور بگو تا به نزد من بیان گرسیفه از حرفی نمیزنه و میره و پیام افراسیاب رو به بزرگان توران میگه وقتی بزرگان دربار توران جمع میشن افراسیاب تصمیم خودش رو با اونها در میان میگذاره میگه شما میدونید که زندگانی من همیشه در جنگ سپری شده اما الان زمانیه که میخوام از جنگ و خون دست بردارم و در آسایش زندگی کنم اگر با من هم داستان هستین منو یاری کنین میخوام پیامی دوستانه برای سیاوش رستم بفرستم و به جنگ و دشمنی پایان بدم. بزرگان هم همه یک صدا پاسخ میدن که تو پادشاه بزرگ توران هستی و هر چه که تو بگویی ما میپذیری افراسیاب هم که موافقت جمع رو میبینه به گرسیوز معمولیت میده تا هدایایی گرانبه ها رو از خزانه برداره و به اون سوی رود جیهون بره و پیام اون رو به سیاوش روستن بده گرسیوز با هدایای افراسیاب که چندین رأس اسب تازی تعداد زیادی شمشیر هندی و تاجی آراسته به گوهر و دویست غلام و کنیز بود به سوی بحل خلکت میکنه در این سفر پیامی از افراسیاب هم با خودش داشته. در اون پیام افراسیاب نوشته بوده که من هیچ گاتوشمن ایرانیان نبودم با من آشتی کنید تا هر دو کشور در آسایش زندگی کنیم. امیدوارم دوستی منو بپذیرید و هرچه زودتر با ما آشتی کنید گرسی با اون محموله گرانبه های هدایا به رود جیهون میرسه در اونجا سوار کشتی میشه و از رود میگذره و قدم به خاک ایران میگذره ساعتی بعد اون با هدایای افراسیاب وارد کاخ سیاوش در شهر بلخ میشه سیاوش وقتی که میشنوه گرسیوز برادر افراسیاب به اون دیدار اون اومده به گرمی از اون استقبال میکنه بعد از تیه تشریف ها تا احوال پرسی گرسیوز نامه شاه توران رو به سیاوش میده و چون تصمیم داشت هرچه زودتر پیام افراسیاب رو هم به رستم برسونه اجازه رفتن میخواد سیاوش با مهربانی گرسیوز رو رو بدرقه میکنه اون هم سوار به اسب میشه و با سرعت به طرف اقامتگاه رستم میره رستم هم به رسم ادب از اون استقبال میکنه و چون مضمون نامه افراسیاب رو میبینه یک هفته مهلت میخواد تا پاسخ بده گرسیوز میگه باشه حرفی نیست من در برق میمونم تا شما به نامه شاه توران پاسخ بدید بعد هم از رستم خدافزی میکنه و میره بعد از رفتن گرسیوز رستم به سراغ سیاوش میره تا با اون مشورت کنه سیاوش و رستم مدت زیادی درباره باره افراسیاب گفتگو میکنن. تقاضای افراسیاب برای اونها مخصوصا برای رستم که سابقه دشمنی و کینتوزی افراسیاب رو میدونسته بسیار باور نکردنی بوده. نمیتونستن بپذیرن که افراسیاب از دشمنی با ایران دست برداشته. پس از مذاکره بسیار تصمیم میگیرن که برای قبول تقاضای افراسیاب چند شرط پیشنهاد کند که اگر اون شرط ها پذیرفته بشه به جنگ خاتمه بدن خب دوستان ادامه ماجرا. و شروطی که رستم و سیاوش برای افراسیاب میگذارند و اتفاقاتی که بعد از اون میافتر رو میگذاریم برای برنامه بعدی امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید اگر کم و کاستی در اون هست به بزرگی خودتون ببخشید و خوشحال میشیم که با راهنمایی هاتون و انتقاداتتون به ما کمک کنید در بهبود این برنامه تا برنامه دیگر و ادامه‌ی قصه سیاوش از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی همه شما را به خدای مهربان می‌سپارم روز روز غارتون به کام و به میل